سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید سلام و درود و امیدوارم که حالتون خوب باشه هفته گذشته مصابه داشتم با یک ورزشکار جوان بهایی که به بهایی بودن علا رقم شایستگی های فنی و کسب چندین عنوان قهرمانی کشوری و استانی از همراهی تیم ملی کشورش مونده. این رو هم باید اضافه کنم که ایشون از دانشگاه هم اخراج شده و در واقع با شدیدترین موارد نقض حقوق بشر برخورد داشته بعد از اینکه پادکست هفته قبل رو منتشر کردم خبری در مورد یکی دیگه از جوانان بهایی به دستم رسید که در وبسایتم منتشر کردم خبر در مورد سمیم دوکوکی بود که از دانشگاه آزاد بیزا در استان فارس اخراج شده سمیم دانشجوی رشته موسیقی بود سعی می کنم اگر بشه با سمیم هم گفتگویی داشته باشم تا ماجرا رو از زبان خودش بشنویم وقتی که این خبر رو منتشر کردم یکی از سایت ها این خبر رو البته با ذکر منبع که خب در بین سایت ها و های ایرانی معمولا زیاد پیش نمی یاد به انگلیسی ترجمه و منتشر کرد برام جالب بود و البته باید حد می زدم. خبر انگلیسی بارها بارها بازنش شد و چون من هم در توییتر تک شده بودم میدیدم که دی زیادی این خبر رو بازنش میکنم بعد با خودم گفتم چرا خودم این خبر چند خطی رو ترجمه نکردم شاید تنبلی کردم نمیدونم هر حال دست اون دوستانی که زحمت ترجمه و بازنش خبر رو کشیدن درد نکنه یک جا دیدم که در توییتر همین خبر رو که منتشر کرده بودن جواد ظریف رو هم تک کرده بودن و اعتراض کرده بودن که این هم یکی از کسانی که شما گفته بودید وجود ندارند که خب اگر اخبار رو دنبال می کنید متوجه می که اشاره است به مسابه اخیر زریف که وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران رو انکار کرده بود و مثل همیشه و البته سخنان دیگر مسئولین نظام ادعا کرده بود که ایران از نظر حقوق بشر بهترین جای دنیاست. مسئله حقوق و بشر هم اسطوره جالبیه که این روزها بیشتر سیاسی شده تا حقوقی. برای مثال دیروز در خبرها خوندم که عربستان برای استخدام هشت مأمور جدید اعدام آگهی استخدام زده. یادم میاد چند ما پیش که دنبال کار میگشتن وقتی با دوستام و همکلاسیام که اونها هم دنبال کار بودن در این مورد صحبت میکردیم من برای خنده میگفتم که آره من کار کردم و وقتی اونها میپرسیدن کجا منم میگفتم داعش فیلمبردار و ادیتور میخواد. پولم خوب میده و همه با هم میخندیدیم. ظاهرا شوخی ما چندان هم شوخی نیست. عربستان رسما آگهی استخدام زده. حالا اینکه چرا کسی مدعی نمیشه، به اعتراض نمیکنه رو دیگه خودتون پیدا کنید. نمیشه که جواب همه سالها رو من بدم. بحث کار پیش اومد. فکر کنم وقت مناسبی که در مورد کار در آمریکا صحبت کنیم. من همیشه آمریکا رو از نظر ساختار اداری با ایران مقایسه میکنم و از این نظر این دو کشور خیلی شبیه به هم هستن. کاغذبازی و بوروکراسی در آمریکا همون قدری هست که در ایران هست. یکی از مشکلاتی که ما در ایران داریم این مساله است که رابطه بر ضابطه داره و اگر بخوام خیلی خودمونی بگیم تا پارتی نداشته باشی کارت پیش نمیره اگه خیال می کنید اینجا اینطوری نیست سخت در اشتباهید البته یک فرق خیلی بزرگی بین پارتی بازی ایرانی با مدل آمریکایش هست در ایران همین که پارتید داشته باشی کارت حلله دیگه شاید خیلی نیازی به مدرک و تخصص هم نباشه مثلا شما مدرک الکترونیک دارید دوست با تو وزارت ک شما هم کاری در زمینه رششتهتون پیدا نکردی اون وقت تو ذارت خونه پست مربوط به صد خالیه. خاله اینو میدم به شما شما نه تخصص داری، تجربه، شایدم تا حالا صد رو از نزدیک ندیده باشید، اما میشه رئیس یه عده مهندس و تکنسین صدسازی. این مدل ایرانیه. برای همین هم است که خیلی از کارها یا جلو نمیره یا کن جلو میره یا نیمه کاره ول میشه. آمریکا اینطوری نیست که شما بدون تخصص و دانش سر کاری بری، حتی اگه مدیر اون شرکت دوست باباتون باشه. استثنا همیشه وجود داره، اما من فعلا در مورد استثناها صحبت نمی‌کنم. چیزی که باید بدونید اینه که داشتن رابطه نقشه خیلی مهمی رو در گرفتن کار داره. من واقعا ترم کلاسی داشتم که در مورد مصاحبه بود و یک فصلی در مورد های کاری در کتاب ما بود. آماری که کتاب ارائه می‌داد حکایت از اون داشت که داشتن رابطه تا 81 درصد به گرفتن کار کمک می‌کنه. در آمریکا رابطه اینطور کار می‌کنه که شما تخصص رو دارید، مدرک رو هم دارید، علم اون کار رو هم دارید. اما مثلا در شرکت بوئینگ کسی رو نمی‌شناسید و هر بار هم آنلاین برای کار اقدام می‌کنید، جوابی نمی‌گیرید. حالا پسرخاله شما اونجا مشغول به کاره و رئیس کارگزینی رو هم میشناسه. کافیه پسرخاله شما در مورد شما با رئیس کارگزینی حرف بزنه. شما هنوز استخدام نیستید. اون وقت رئیس کارگزینی از شما میخواد که رزومه و سابقه کارتون رو براش بفرستید. داشتن رابطه به شما کمک میکنه که رزومه و سابقه کار شما دیده بشه و اگر از شما و رزومه شما و سابقه کاری شما خوششون بیاد و شما مناسب ببینن به شما یه وقت مصاحبه حضوری میدن. از اونجا بعد دیگه دستش ماست که خودتون رو چطور نشون میدید یک اصطلاح اینجا وجود داره که برای ما ایرانی ها و خا میانه ای ها اصطلاح خیلی بدیه و معنای بدی داره اینها میگن باید خودتون رو به کارفرما و در حین مصابق شغلی بفروشید یا خودتون رو قابل فروش کنید معمولا وقتی ما صحبت از خود فروشی میکن منظور اون چیز دیگه ای هست اما اینجا و در میان جویندگان کار خودت را فروختن به این معنی هست که داشته و استعداد رو به نحو احن معرفی کنید تا کارفرما بتونه انتخاب کنه. مثلا وقتی که میرن خرید. اگر از همه امکانات یک لپتاپ خبر نداشته باشیم و نداریم cپیو لپ لپتاپ چقدر هاردش چقدر ای یا چقدر رم داره خب قط ریسک نمی کنیم و اون رو نمیخریم و میرم سراغ لپتاپی که از امکاناتش از سیستم عاملش اطلاعاتی هر چندند کم داشته باشیم پسی هاتون باشه اگر در آمریکا هستید اگر تازه به آمریکا آمدید و کسی بهتون میگه باید خودتون رو بفروشید به معنی بد نگیرید و این معنی بدی نداره به معنی است که خودتون رو به 9 اح معرفیکن به کارفرما که کارفرما بتونه از کاندیداهای های مختلفی که برای اون کار وجود داره بهترین رو انتخاب کنید البته هر سیستمی نقایس خاص خودش رو داره مثلا تو آمریکا اگر یک شرکتی فرض کنیم HP بخواد نیرو بگیره باید این رو به صورت عمومی اعلام کنه مثلا در روزنامه یا در سایت خود شرکت یا در سایت های کاریابی اطلاع بده که فرصت برابر برای همه باشه که اقدام کنن که البته این چیز خیلی خوبیه اما گاهی وقتا پیش میاد که اول اون شخص مورد نظر استخدام میشه بعد آگهی پست میشه که صورت کار رو درست و قانونی جلوه بدن مثلا چند وقت پیش با یک از تهیه‌کنندگان سابق سی ان ان صحبت می‌کردم واسش خواستم که به من کمک کنه برای پیدا کردن کار در سی اول که خیلی منو ناامید کرد و بین حرفاش هم گفت که اولا وقتی CNN بخواد نیرو بگیره بیشتر از همون نیروهای داخلی خودش استفاده میکنه. مثلا اگر کارگردان بخواد بیاد و به یه دستیار کارگردانش که خوب کار کرده ترفی میده و اونو میکنه کارگردان البته برای همین هم آگی استخدام میزنن اما نتیجه از قبل معلومه و شانسی برای بقیه نیست راست و دروغش پای خود این شخص من نتعید میکنم نه اما اگر بهش فکر کنید منطقی به نظر م وریخته چیز بدی هم نیست چرا نباید به کسی که خوب کار کرده ترفی داد مسئله بعدی طرز برخورد هست با اصطلاح امروز برو فردا بیا حتما آشنا هستید و اگر کارتون به ادارات ایران افتاده باشه حتما تجربه هم کردی اینجا هم امروز برو فردا بیا هست البته لازم نیست شما صد تا پله رو بالا پایین کنید تلفن میزنید یا ایمیل میزنید یا اونها به شما تلفن می‌زنن ولی امروز و فردا کردن هم وجود داره در ثانی مثل ایران نیست که طرف تو اداره مثلا اداره تامین اجتماعی مثل طلب کارها با آتون برخورد کنه اینجا حتی وقتی سرتون رو کلاه میذارن و حقتون رو میخورن اینقدر شیک و بخنده با خنده برخورد میکنن که با اینکه کارتون انجام نشده یا مثلا میدونید که شرکت اینترنت این ما داره 10 دلار اضافیش از شما میگیره اینقدر با خنده و خوب جوابتون رو میدن که رو حتی روتون نمیشه اعتراض کنید البته باز هم میگم استثناء هم هست و مردم اینجا فرشته نیستن اینجا هم بهشت نیست و من خودم شخصا با آدم های برخورد کردم که هزار بار قربون اون آقا یا خانم بداخاقق توی بیمه تامین اجتماعی شیراز رفتم اما به صورت روال معمول اینجا به مشتری به خدمات مشترکین این اهمیت میدن. و شما اگر به عنوان فروشنده استخدام شدید باید بدونید که حق کاملا با مشتری اینو تو ایران هم میگفتن جمله یه معروف حق با است. و من اون موقع که خودم مغازه داشتم صد درصد مخالفش بودم اما الان نظرم کاملا عوض شد این بود این قسمت از برنامه ما که در مورد کار صحبت کردیم امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید تا قسمت آینده خدایی رو نگهدارتون